أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها عباد الصالحون صدق الله العظيم الله جل جلاله شکرمیکنم کہ توفیق حضور در خانه خود را در اولین و نخستین ساعات وقت جمعه نصیب من فرمود و از اوتالا مسئلت داریم که بهترین اطاها و انعامات خاصه این روز را به همه من و شما نصیب بفرمایید با ترجمه آیه مبارکی که تلاوت شد آغاز می که خداوند صبحان پیامی را برای انسانها اعلان می دارن که این پیام در تمام های آسمانی به مردم ابلاغ شده است پیامی که همه انسانیت به دنبال آن هستند. خداوند زلجلال می می‌فرماید و لقد فی الزبور من بعد الذکر مراد ذکر تورات است و ترجمه این می شود که میفرمایند ما لازم گردانیدیم و اعلام داشتیم در زبور بعد از ذکر بعد از تورات یعنی این پیام در تورات هم آمده است و الان برای امت محمدی صلی الله علیه وسلم نیز ابلاغ می شود که ان الارض یرسها عبادی الصالحون انسانها و بندگان صالح رب العالمین وارث زمین خواهند زمین و پیروزی و نصرت برای بندگان صالح خداست هر زمان که انسانها صالح بودن خود را به صورت کامل و تمام ایار اثبات نمایند، قلبه و نصرت از آن مسلمان ها خواهد بود. امروز شهر و عالم دنبال سلطه و تسخیر امت ها و ملت هاست ها همه تلاش می کنند بر مردم و بر انسانیت سلطه پیدا بکنند و در میان جوامع اعتبار و موقعیت کسب بکنند اما از طرفی جهان به خاطر بی سردمداران و حکمرانان و مدعیان سلطه بی اعتماد است موفق ترین و بادوام ترین حکومت ها و قدرت ها نظام خواهند بود که آنها بنده خوبی برای الله باشند و قلوب انسان ها رو به دست بی آورند قلوب ها رو تسخیر بکنن و در اختیار بگیرن امروز میبینیم با وجودی که ما مسلمانان مدعی توحید هستیم اما در دیار مسلمین هم ناآرامی، پریشانی و بی‌اعتمادی حکمفرماست اما مشکل ما مسلمان ها در اعتقاد نیست مشکل ما مسلمان در انحراف از مسیر درست است در انحراف از روش محمدی صلی الله علیه و سلم است بهترین الگو برای به دست آوردن دل انسان ها بهترین الگو و موفقترین الگو برای به دست آوردن علو مردم الگوی محمدی صلی الله علیه وسلم است. پیامبر چگونه بر دل‌های مردم آن زمان قدرت پیدا کرد و چگونه دل‌های انسان‌های آن دوران رو و انسان‌های عالم تا به قیامت را متوجه ساخت اگر نگاهی گذرا و, و مختصر داشته باشیم به نحوه تشکیل حکومت اسلامی متوجه می‌شویم که پیامبر صلی الله علیه و روی قلوب انسانیت کار کرد مرکز فرماندهی انسانیت رو درست تشخیص داد و ایمان صحیح و توحیدی را در دل مردم کاشت الله تعالی می که والبلد طیب و و به ازن الله درختی سمر می و میوه می داد. که ریشهش در زمین طیب و پاکیزه نشانیده باشد درختی سمر و میوه میدهد که در زمین پاک قرص شده باشد و کاشته شده باشد لذا پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای نظام اسلامی و درخت اسلام دلهای انسانیت رو پاک اگر نگاهی مختصر داشته باشیم به دوران رسول خدا صلی الله علیه و وسلم و جامعه عرب آن زمان متوجه می‌شویم که مردم عرب دارای نظام نبودند دارای حکومت نبودند شالوده آنها از هم پاشیده بود همانند یک ساختمان زلزل زده زد شده که از جاهای مختلف ترک خورده بود و با یک تکان کوتاه و مختصر همه اش از هم می پاشید در مکه مردم قبیله ای می و به جان هم افتاده بودند، در مدینه همینطور جنگ‌های طولانی او سخزرد و در سایر شهرهای هدیاز همینطور نه داشتن که نه امپراتوری روم در آن زمان و نه امپراتوری ایران حتی آرزوی سلطه بر عربها را نداشتند چون عربها برایشان دردسر بود. از هم پاشیده بودن چیزی نداشتند. و این جامعه از هم پاشیده تنها نیاز داشت به این که پیانبر صلی اللہ علیه وسلم یک پرچم به عنوان ملیتگرائی و عرب برمی افراشت همه دورش جمع می شدن منتظر چنین فرصتی بودن که کسی فریاد اعراب را سر داد همه دو و برش جمع بشوند حتی سران مشرک مکه به پیغمبر صلی الله علیه و وسلم این پیشنهاد را دادن که شما اگر حکومت میخوایی همه ما گردت شما جمع میشویم اما پیغمبر صلی الله علیه و وسلم دنبال این نبود دنبال پاکی دل‌های انسان‌ها بود دنبال به دست آوردن قلوب مردم بود به همین خاطر شما میبینید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم سیزده سال در مکه به سمت کعبه نماز می خواند که 360 بود درون آن نگهداری میشد هیچگاه این بت را در هم نشکست دلهای مردم را آباد می کرد قلوب مردم را اصلاح می کرد وقتی قلوب درست بشود دلها درست بشود بدها در هم شکسته می شود خودشان به دست خود بودها را در هم شکستن هدف انبیا سکانداری حکومت نبود اما آنها الله را از خودشون راضی و خشنود کردند. و روی دلها و قلوب انسانیت کار کردند مردم زمام امور خود را دنیا و دین خود را آمدن تابع پیغنبر صلی الله علیه و سلم و خلفای راشدین رضوان الله علیه مجمعین شدن امروز بعضی ها فریاد میزنند که اسلام بازدور وارد ایران شد با ظلم گسترش پیدا کرد اصلا چنین چیزی نیست ادعای مسلمان هایی نمیست عمل کرده مسلمان هایی نبود خداوند متعال در قرآن عظیم و شن می فرمد لا اکراه فدین قد تبین الرشد و منالغی هیچ اکراه و اجباری در پذیرش دین نیست راه رشد راه تعالی خودش مشخص است واضح است راه گمراهی خودش واضح و مشخص است که گمراهی است نیازی نیست که اسلام به زود در سینه‌ها رسوخ بکند زمانی که پیامبر صلی الله علیه و وسلم مکی را فتح میکند قدرت دارد بر اهل مکه اما کسی رو حتی چهار ماه به مشرکین مکه فرصت داد فسیح و فلعرض اربعت اشهر فرمود خداوند که چهار ماه شما فرصت دارید در باره اسلام تحقیق کنید اگر پذیرفتید که خوب اگر نپذیرفتید فقط مرکز توحید را ترک کنید از مکه خارج بشرید کشتنی در کار نبود در جنگ های زمانی رسول خدا صلی الله علیه وسلم که بعضی دستاوید خود ساختن که کشت و کشتار بود در این جنگ ها اغلب جنگ ها تحمیل بر مسلمان ها بود بعد را چی کسانی به وجود آوردن اهد را کیا خلق کردن خندق و احزاب را کیا به وجود آوردن فتح مکی که مسلمان ها پیش قدم شدن کسی کشته نشد در تمام جنگ های دوران نبوی صلی الله علیه وسلم آمار کشت های مسلمان ها و کفار به 1400 هم نیمی رسد چه کسی می تواند تزمین بکند؟ یک شبه جزیره با آن عظمت رو با هزار و نفر بیاید عقیدی اونها رو عوض بکند شاید کسی قدرت پیدا بکند حکومتی به دست بیا اما عقیده رو نمی تواند. چند سال از مردم در عراق و افغانستان و سوریه و بهره و کشورهای دیگر بر اونها اجبار می شود اما هیچ کس از عقیده دست بر نمی دارد. سرونان عزیز در آسانه جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی هستیم امروز انقلاب اسلامی در تمام کشورها شناخته شده است یعنی شما نگاه بکنید حتی دشمنان این نظام و این کشور آنها کاملا حرکات ما را رسد می کنند و برنامه میریزن یعنی نیاز به معرفی نداریم امروز لازم است که مردم و مسئولین از آرمان‌های مردم و از های مردم که در ابتدای انقلاب با همین آرمان‌ها و اهداف به حکومت رسیدیم از اونها دفاع بکنیم آنها را از دست ندهیم دو آفت معمولاً در انقلاب‌ها حزینه های به نشستن آن انقلاب را هدر می کند. مراقب باشیم این آفتها در نظام ما و در کشور ما رسوخ پیدا نکند هر انقلابی که می مطابق متابق آرمانهایش سالم بماند باید مراقبه این دو مسئله باشد. اول اینکه زمان امور به دست افرادی نیفتاد که با اهداف نظام آشنایی ندارند یا فاصله دارند. و سعیان، فتنه دوم و آفات دوم انحراف از مسیر اصلی و توجه به ارزای هر و یک باند و یک جریان خاص است. این دو مسئله میتواند یک انقلاب رو منقرض بکند، ساقط بکند. مردم مثل روز هویدا و مشخص است که با فریادهای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی برای تشکیل یک نظام اسلامی حرکت کردند و قیام کردند اگر ما در مسیر این شعارهای اصلی قدم برداریم محفوظ خواهیمان ثابت خواهیمان همه زمامداران و مسکولین و مردم باید مراقب باشیم چند اصل کلی هست که میتواند یک نظام و یک انقلاب را حفاظت بکند و تصدی از این اصول میتواند به ضرر و به زیان یک حکومت و یک نظام باشد مسئله اول صداقت به جای فرید بنده نمیخواهم خدای نخواسته زنی بکنم یا مسئله را مطرح بکنم یا قضاوتی بکنم چند نظریه اساسی است که هر کس از مردم و مسئولین باید اینها رو بررسی بکنیم در نظر بگیریم ببینیم که در این مراحل و در این اصول چقدر ما از خودمون عمل نشان داریم چقدر کوتاهی کردیم تسخیر دلها در صداقت حاصل می شود یک واقعی رو عرض می کنم در سال 92 هجری سپاه اسلام شهر سمرقند رو محاصره کرد چند ماه محاصره به طول انجامید با طیبت ابن مسلم باهیلی فرمانده فتوحات آسیای صغیر بعد از چند ماه محاصره با حاکم و والی سمرغند مذاکره میکنند و بعد از مذاکره با هم صلح و سازش میکنند حاکم سمرغند احساس امنیت میکند دروازه های شهر را می میگشاید اما این فرمانده و مسلمان ها از فرصت استفاده میکنند شبیخون میزنند و حمله میکنند و اون قرارداد صلح رو نقض میکنند و این شهر را می میگشاید چند سال بعد در سال 92 هجری حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه به عنوان حاکم عادل عمری ایشان شکایتی رو دریافت می از احالی سمرغن مبنی بر اینکه شما این شهر را با قدر و خیانت فت کردید. حضرت عمر ابن عبدالعزیز شخصی را معمور می کند که قاضی مسلمان در شهر سمرقند این پرونده را باید رسیدگی بکند. قاضی مسلمان بعد از رسیدن شواهد به این نتیجه می رسد که این شهر با قدر و خیانت فت شده و سربازان عمری، باید فقط با سلاح و همون چیزهایی که را داشتن از شهر خارج شد آنها همین کار رو میکنن اما مردم سمرقند از اسلام خوبی دیدن، خود رو به دست پای سربازان میاندازن و میگوین نخیر ما از حکومت عمر ابن عبدالعزیز راضی هستیم برگردید و با التماس آنها رو به شهر خارا این از نمونه عدالت و این است نمونه الگوی خوب برای همه ما که ما سعی بکنیم که بر دل‌های مردم قدرت پیدا بکنیم امروز منشأ کشتارها با وجودی که همه مدعی اسلام هستیم و مدعی توحید بی اعتمادی هاست که در تشوارهای اسلامی جنگ و خونریزی به راه میوفتد کم camas مسئله دوم برای بیمه شدن یک نظام و یک انقلاب و یک حکومت پرهیز و اجتناب از حزب گرایی و طبقاتی گری است برگردیم به الگوی اصلی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم شخصی از قبیله بنی مخزون سرقت می کند رسول خدا صلی الله علیه وسلم بعد از دریافت شکایت و حضور شهود و اثبات جرم حکم می که دست این زن باید قد بشود اما اون زن از یک قبیله اشرافی فکر می کند می تواند راه گریزی برای خود پیدا بکند میگویند که برویم نزد اسامت ابن زید محبوب رسول خدا صلی الله علیه و سلام و سفارش می‌کند اسامه با اصرار اونها نزد پیغمبر این سفارش رو به جام می‌آورد اما پیغمبر صلی الله علیه و سلام بر وی اتاب کرده سرزنش می‌کند میفرماد: ان ما هلك الذين من قبلكم اممتهای قبل از شما هلاک شدند چرا؟ چون انا اذا کان و اذا سرقه فیه مش شریف ترکوه و اذا سرقه فیه ضعیف حقام و علیه الحق در امتهای سابق اگر آدم شریف سرقت میکرد او رو راها میکردن اما اگر انسان ضعیف سرقت میکرد او رو قصاص میکردن او رو مجازات میکردن و این الله لو سرقت فاطمه بنت و محمد صلی الله علیہ وسلم لقتعت و قسم به الله اگر فاطمه دختر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت بکند من دست فاطمه رو قط میکنم این عدالت نبویست بین فقیر و قنی و باز در بین مسلمان و غیر مسلمان می هر کسی که به معاهدی یا به یک زمی به یک, مسع... به یک کافری که هم پیمان است یا به یک کافری که تابعیت رو قبول کرده است ظلمی بکند او انتقص او یا به او نقصانی وارد بکند او کلف او فوق طاقته یا بیش از طاقت به او تکلیف برساند یا از او چیزی را بدون رضایت نفس بگیرد ف حجیج فرمودن من پیغمبر در روز قیامت از طرف آن شخص مقاہد و زمی به دفاع بر و از مسلمان انتقام میگیرم. این انتقام پیغمبر صلی الله علیه و در روز قیامت و در همین دنیا برای یک انسان کافر است که تابعیت را قبول کرده است. لذا همه ما مراقب باشیم چه کسانی که در رده های پایین مسئولیت های دولتی خدمت می کنیم چه در طبقات متوسط یا بالا هرچقدر که مردم صداقت بیشتر مشاهده بکنن انصاف و عدالت بیشتر مشاهده بکنن و هرچقدر که ببینن در نظام و در انقلاب صحیم هستند بیشتر به دفاع برخواهن خواست و بیشتر خود را خودی احساس خواهن کرد وقتی ما در رده های مختلف نظام ببینیم که در مدیریت ها در وزارت ها در استانداری‌ها، ها از افراد نخبه و تحصیل کرده و با صلاحیت اهل سنت کار گرفته می شود مطمئن باشید که در هر شرایطی مردم با انقلاب هستند و خواهند بود هم تحریم ها رو تحمل می کنند هم تورم و گرانی ها رو تحمل می کنند چون وقتی انسان در یک نظام احساس بکند که من شریک آن هستم و من عضو آن هستم و من خودی هستم مطمئنن همه سختی ها رو تحمل می کند و همه مشکلات رو با استقامت پشت سر میگذارد. گذارد صورت چون وقت رو به اتمام است چند مورد رو من می گذارم خلاصه رو عرض می کنم امروزه روح تمدن قرب همیشه ناپاک بوده و امروزه هم همونطور ناپاک است قرب با وجود توسعه دوچار استراب و نگرانی است گرچه به لحاظ سن و سال حکومت سرمایداری در آمریکا و قرد جوان است اما با این وجود در حال احتضار و مرگ است شما می بینید مسلمانه ها روز به روز در قلب اروپا و آمریکا در حال پیشرفت و توسعه هستند و این شعار اسلام خواهی و ایمان در دلهای قربیه ها و در وجود اونها و بر زبان اونا روز به روز بیشتر آشکار و ویدان می شود اخیران همین جنبش والس که به مرکز سرمایداری آمریکا برمی که بیشتر تجار و سرمایه به همون خیابانی که جنبش از آنجا شروع شد برمی اظهار مخالفت می با حکومتی که یک درصد سرمایه برای آن تصمیم می و 99 درصد مردم مورد تبعیض قرار می گیرند و حکومت های آنها دچار فاصله طبقاتی زیاد می شون. اما اسلام خواهی به اوج خود رسیده است آنها برای اینکه این شعار مسلمان ها و این فریاد مسلمان ها به گوش مردمشان نرسد مسلمان ها را با جنگ و درگیری ها به خود پیرفتار مسلمانانی که در کشورهای فرانسه و انگلیس و کشورهای اروپایی با قدرت داشتن تبلیغ دین میکرد آنها را متوجه سوریه و متوجه عراق و سایر درگیری های دورونی مسلمان ها کردند. این جنگ ها را به صورت مداوم و پیوسته ادامه می دهند و مسلمان ها را برای جنگ با خودشان از اروپا و آنجا گسییل می کنن. چرا؟ چون می بینن که اگر مسلمان ها دوچار درگیری و جن نباشند. در بین کشورهای اروپا و قرب و آمریکا دعوت اونها و شعار اونا و تمدن اونا به سرعت در حال تکثیر و اشاعه و نشر است لذا امید است که همه ما مسلمان ها همه حکمرانان و های جوامع اسلامی و مردم مسلمان به خداییم و با همون شعارهای اصلی دین اسلام یعنی صداقت، عدالت، مساوات، ترحم، عفو و گذشت سعی بکنیم، های خود را مستحکم بکنیم و باز در بین کفار سعی بکنیم که مؤثر واقع بشویم. وقت تمام شده است بنده در این هفته آخر حوادیثی که خود شما ملاحظه کردید ساختمان پلاسکو، و تعدادی از آتش نشانان و مردم در این حادثه همه ابراز همدردی و ابراز همخارگی کردن و به طریقه های مختلف ابراز همدردی نشان دادند. ما هم از این طریقه ابراز همدردی می کنیم و خود را در غم برادرانمان که در این مصیبت داغدار شدن شریک می دانیم و برای آنها آرزوی مقفرت و غلوب درجات داریم همچنین در سیستان و بلوچستان در این چند روز با بارندگی های پنج روزه و مداوم که ادادی از هموطنان ما اونجا هم شهید شدن دو نفر شهید شدن در این حوادث تعدادی بی خانمان شدن خانه های تخریب شد و امیدواریم که انشاءالله همونطور که نیروهای حلال احمد و مردمی واقعا خدمت از خود نشان دادن باز بیشتر انشاءالله به فکر آن مردم محروم و زجر دیده باشن چون زندگی کردن در خیمه و در چادر در این هواهای سردزمستان دشوار است انشاءالله که بیشتر به فکر برادران مسلمان خود باشیم و دعا میکنیم برای پیروزی اسلام و مسلمین در سرتاسر عالم و همچنین دعا میکنیم خداوند متعال تمامی مریضان مسلمین خصوصا علمای را که از شعر ما در بستر بیماری استن خداوند آنها را شفای عاجل و کامل انایت بفرماد. سبحان رب بکر رب العزت عم سلام یسفون. سلامون علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین بر رحمت